فصل 26 در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت شما میدانید که دو روز دیگر عید فسح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم میشود و آنها او را مسلوب کنند در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برساند آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گردد مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. وقتی ایسا در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود زنی با شیشه از عطر گرانبها ها او آمد و در حالی که ایسا سر سفره نشسته بود آن زن عطر را روی سر او ریخت شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اصراف برای چیز؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم عیسی این را فهمید و به آنان گفت چرا مزاحم این زن میشوید او کار بسیار خوبی ری برای من کرده است فقرا همیشه با شما خواهند بود اما من همیشه با شما نیستم او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود آنچه او کرده است به یاد بوده او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن دوازده حواری بود پیش سران کاهنان رفت و گفت اگر ایسا را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان سی سکه نقره شمرده به او دادن. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا ایسا را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فتیر شاگردان نزد ایسا آمده از او پرسیدند. خجا میل دارید برای تو شام فسح را آماده کنید. ایسا جواب داد در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید. استاد میگوید: وقت من نزدیک است و فسح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت شاگردان طبق دستور ایسا عمل کرده و شام فسح را حاضر ساختند وقتی شب شد ایسا با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست در ضمن شام فرمود بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند خداوندا آیا من آن شخص هستم عیسی جواب داد کسی که دست خود را با من در کاسه فروم کند مرا تسلیم خواهد کرد پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است اما وای بر آن كه که, که پسر انسان توسط او تسلیم شود برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی‌آورد آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت ای استاد آیا آن شخص من هستم عیسی جواب داد همون طور است که می‌گویی شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید این است بدن من آنگاه پیاله را برداشت و پس از شک آن را به شاگردان داد و گفت همه شما از این بنوشید زیرا این از خون من که اجرای پیمان تازه را می بکنند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود بدانید که من دیگر از میوه مون نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم پس از آن سرود فسح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند آنگاه به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت پتروس جواب داد، حتی اگر همه تو را ترک نماین، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. عیسی به او گفت، یقیم بدان، که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. پتروس گفت، حتی اگر لازم شود با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفت. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت در اینجا بنشینید من برای دعا به آنجا می‌روم او پتروس و دو پسر زبده‌ای را با خود برد غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت، ای پدر، اگر ممکن است این پیاده را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیشان سه شاگرد برگشت و دید آنان خابیدن، پس به پتروس فرمود، آیا هیچیک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید روح مایل است اما جسم ناتوان عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت ای پدر اگر راه دیگری نیست جز اینکه من این پیاله را بنوشم پس اراده تو انجام شود باز عیسی آمده آنان را در خواب دید زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد آنگاه نزد شاگردان برگشت و آنان گفت باز هم خواب هستی هنوز استراحت می‌کنی ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود برخیزید برویم آن خائن الان نیاید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا یکی از دوازده حواری، همراه گروه کسیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدن. این گروه همه با شمشیر و چماغ مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیری. پس یهودا فوراً به طرف ایسا رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید. ایسا در جواب گفت ای رفیق کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه جلو رفتن و ایسا را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با ایسا بودند دست به شمشیر خود برد آن را کشید و به قلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود شمشیر خود را قلاف کن هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود مگر نمیدانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت مگر می‌خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید. هر روز من در معبد می نشستم و تعلیم می‌دادم، و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند و انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده، ریخت آن گروه ایسا را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند پتروس از دور به دنبال ایسا آمد تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردن که دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتن و شهادتهای دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند، این مرد گفته است من می توانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف سه روز دوباره بنا کنم کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمی دهی اما عیسی ساکت ماند پس کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگند میدهم به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی عیسی پاسخ داد همان است که تو میگویی اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می‌آید. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت او کف گفت آیا شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید نظر شما چیست آنها جواب دادند او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدن و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می حالا ای مسیح از ای بگو کی تو را زده است. در این وقت پتروس در بیرون در حیات خانه نشسته بود که خادم ای پیش او آمده گفت تو هم با ایسای جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت من نمیدانم تو چی می گویی. پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت این شخص با ایسای ناصری بود. هم پتروس منکر شده گفت من قسم میخورم که آن مرد را نمی شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند البته تو یکی از آنها هستی زیرا از لحجت پیداست. اما پتروس سوگن خورده گفت لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم، در همان لحظه خروس بان زد، و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود، پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی پس بیرون رفت و زار زار گریست.